اگر شما ترفتار علی هستید شما اگر واقعا پیروان اهل وید هستید قربان برم علی یکی از پسرانش اسمش ابو بکر در میدان کربلا شهید شده چند روز شما او را معرفی کردید کدر یک از شما که پیروان علی هستید پسرانتون را به نام ابو بکر نامگذاری کردید علی بسرش ابو بکر در کنار برادرش حسین در کربلا شهید شده شما ده روز مسیح می خوانید یک روز هم برای ابو بکر مرسیح بخوانید عمر برادر حسین بسر علی در کربلا شهید شده چرا مرسیح نمیخوانید چرا مرسیح نمی خوانید. لگه در کربلا فقط علی اطور علی اکبر و دکتی نیست او عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین خدا پسر باری حضرت علی ابو بکر ابن علی عمر ابن علی عثمان ابن علی اگر دروغ بگویم زبانم را قطع کنی، گردنم را قطع کنی، بیارید نوشته های خودتون را تاریخ های خودتون را نیست پسری به نام ابو بکر در قربلا شهید نشده علی با ابو بکر فرقی ندارد اگر علی با ابو بکر فرقی داد پسرش به اسم ابو بکر نام گذاری نمی شود. علی با عمر اگر فرقی داشت پسرش به نام عمر نامگذاری نمیشد و در کربلا شهید نمیشد. علی با عمر اگر فرقی می داشت امه را به عمر نمیداد. چی می چی می